حکایت، یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت، ای پسر، چندان که تعلق خاطر آدمیزاد به روزی است اگر به روزی ده بودی، به مقام از ملایک در گذشتی، فراموشت نکردی زد در آن حال که بودی نطفه مدفون مدهوش، روانت داد و تب و عقل و ادراک جمال و نطق و رای و فکرت و هوش دهنگشتت مرتب کرد بر کف دو بازو مرکب ساخت بر دوش کنون پنداری نه چیز همت که خواهد کردنت روزی فرامون